بخش اوفلل یوگای پول یوگا بهترین راه را برای به دست آوردن و مدیریت پول دادن ارزش واقعی به پول و استفاده از آن برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی در اختیار ما قرار می دهدد. میدانم که این ادعا چقدر حیرت آور است؟ معنویت هندی با چشم پوشی و جدایی از جهان شناخته می شود. تصور معمول ما یک گوش نشین ریش سفید است که در قاری در ارتفاعات هیمالیا مشغول مراقبه است. اما در واقعیت معنویت یوگا از نوع معنویت مذهبی نیست. یوگا علم آگاهی است. مادامی که در میابید آگاهی واقعاً چگونه رفتار می کند، متوجه میشید که اتفاقی شگفت انگیز رخ می دهد. شما با آن متول میشوید. یادگیری در خصوص هر امر دیگری این تاثیر چشمگیر را ندارد. ممکن است مشتاق باشید و حتی خوشحال شوید که درباره هر چیز دیگری بیاموزید. تاریخ، جغرافیا، فیزیک و غیره اما از درون متحول نخواهید شد و تحول شخصی ناشی از یوگا را تجربه نخواهید کرد یوگا ارتباطی نزدیک با پول دارد که در نگاه اول عجیب به نظر می رسد در ساحت ذات هستی جان بخشایشگر وجود دارد که به این صورت ظاهر می شود فراوانی بیکران، امکانات بیکران خلاقیت بیکران، رحمت، لطف و محبت، عشق جاودان و بخشش بی حد و حصر. این محبت ها فطری هستند و آگاهی انسان برای متجلی ساختن آنها طراحی شده است. اگر آنها را در زندگی خود مجسم کنید به معنای واقعی کلمه ثروتمند هستید. اندوزگیری ثروت تنها با پول از نظر معنوی پوچ است. من چیزی درباره موسیقی رگی نمی‌دانم، اما باب مارلی، نوازنده بزرگ رگی، مانند یک یوگی سخن گفت. بعضی از مردم آنقدر فقیر هستند که فقط پول دارند. برای دستیابی به ثروتی از نوع پایدار، زندگی روزانه خود را بر جان بخشایشگر آن نوعی استوار کنید که به زندگی شما معنا، ارزش و روزی می بخشد. هر هدف دیگری که بخواهید به خودی خود پدیدار خواهد شد. آن هنگام که بین آگاهی و پول ارتباط برقرار کنید، در مسیر درست قدم گذاشته اید. پول، تمام ترای فورت ناکس و تمام اسکناس های دلاری نیست که در جیب ها و کیف ها درگردشند. پول ابزار آگاهی است. بنابراین وضعیت آگاهی شما تعیین می کند که چه دیدگاهی نسبت به پول دارید، چگونه آن را به دست میآورید و برای چه چیزی از آن استفاده می کنید. آگاهی و پول همیشه در حرکت هستند. آگاهی به ما انگیزه می دهد که زندگی را بیشتر کاوش کنیم. پول هم این سفر را دنبال می کند و اگر به اندازه کافی از آن برخوردار باشید، مسیر شما هموار می شود. اگر نگرش خود را از پول به عنوان هدف به بهر بیشتر از زندگی تغییر دهید، از حمایت آگاهی برخوردار خواهید شد، در یوگا این حمایت از دارما می آید که ریشه آن واجهی سانسکریت به معنای پاسداری یا حمایت است. اگر در دارمای خود هستید همانطور که معمولا بیان می شود فراوانی در پی آن خواهد آمد. اگر از دارمای خود خارج شوید فقدان را تجربه می کنید. بدون پشتوانه آگاهی هیچ نتیجه ارزشمندی به دست نمی آید. مفهومی که در پس پول پنهان است قدرت بسیاری دارد و زمانی که مطرح شد به عنوان باور به شدت رشد کرد. در پس زندگی مدرن این باور همچنان شکوفا می شود. به عنوان ابداع ذهن، پول در چهار زمینه مختلف کارهایی انجام می دهد که برای جامعه بشری ضروری است. پول به عنوان پاداش، ارزش، نیاز و مبادله به ما خدمت می کند. چند دقیقه تعمل کنید و در نظر بگیرید که چرا شخصاً به پول نیاز دارید. خواهید دید که هر چهار زمینه در زندگی شما وجود دارد. پاداش پولی که به عنوان هدیه تولد کودک داده می شود، حقوق هر کارگر و انعامی که به پیشخدمت در رستوران پرداخت می شود همگی پاداش هستند. ارزش پولی که برای تولد کودک هزینه می شود بخشش محض است و نیازی به کسب آن نیست، اما نشان می دهدد کودکی که پول می گیرد ارزش دارد. دست مزدی که دریافت می کنید، ارزش کار شما را بیان می کند و برای بسیاری از افراد این راهی برای سنجش عزت نفس آنها می شود. نیاز ما در اقتصادی خدماتی زندگی می کنیم که رفع نیازهای مردم بسیار بیشتر از تأمین نیازهای فیزیکی است. وقتی برای هزینه های درمانی، تحصیلات دانشگاهی خرید لاستیک نو برای خودرو و هزاران مشکل دیگر به پول نیاز دارید، حتی نیازهای به ظاهر غیر ضروری مانند مد جدید کفش های کتانی در هر فصل یا تلویزیون صفحه تخت بزرگتر، پول آن را برای شما تأمین می کند. مبادله پول، تفاوت بین دو نکته را پوشش می دهدد که از نظر ارزش مطابقت ندارند. اگر یک دوچرخه کوهستانی برای فروش دارید و من فقط دوده تخم مرغ برای عرضه دارم، باید پول مبادله شود تا معامله انجام شود. همه این باورها و بسیاری از باورهای دیگر که حال پول میچرخند محصول آگاهی هستند و نشان دادن این امر تا این حد آسان است. یوگا آنصر نادید گرفته شده را اضافه می کند که به نظر میرسد بسیار مهم است. یوگا میآموزد آموزد که هرچه به منبع آگاهی نزدیک تر شوید، آگاهی شما قدرت بیشتری پیدا می کند. با تبدیل این قدرت به هدفهایتان و پولی که برای آنها میپردازید، آگاهی را به ثروت تبدیل می کنید. پول را نمی توان از این آشفت بازار گذینه های خوب و بد جدا کرد. از آنجایی که پول به نیازمندی های ما مثل ارزش، پاداش و مبادل گره خورده است، در واقع ابداع آگاهی به شمار می آید. شما شادی را به دست می و خرج می کنید. عشق، دوستی، خانواده، کار، مجال، موفقیت و شکست را تجربه می کنید و پول همیشه جایی در میان این ترکیب است. برطبق نگرش یوگا آگاهی خلاغه است و به ذهن، افکار، احساسات، الهام ها، دستاورد ها،, ها، لحظات شهودی و هر نکته دیگری که برای ما ارزشمند است از جمله عشق، شفقت، شادی و هوش عطا می کند. هرچه به سرچشمه آرام آگاهی درون خود نزدیک تر باشید، این را بیشتر دریافت خواهید کرد. تمرکز یوگا برخیش حقیقی است، نه قدرت الهی بیرونی. با حفظ تمرکز برخیش حقیقی، ما صرفاً گونه های نخستین برتر نیستیم، بلکه تجلیه آگاهی ناب لایتناهی هستیم. ما وجود داریم تا هر گونه امکان خلاقانه ای را تحقق بخشیم که مایل به داشتن آن هستیم. هیچ قضاوت ارزشی در یوگا وجود ندارد. یوگا علم آگاهی است نه مجموعه ای از قوانین اخلاقی. خواسته ها همگی از همان لحظه برابرند که در آگاهی ما متولد می شوند. با این حال اینکه چهخوااست ای برای ما مناسب است بر عهدهی خودمان خواهد بود.